بسم الله الرحمن الرحيم. و بناء على منن قدته بالله الالعظيم. وصلى الله على سيدنا الله اكبر. شكرا. الله اكبر. و ضا المهديين المنتجبين. سegno mabqiyatillah fis samawati wal ardin saddaqahu بِهِ bihi الْحَمِيَّةِ alhamiyah wa ikhmal daw alasabiyah حَتَّى fursan قَادَتْ لَهُ jahiliyah hatta توفیق بسیار بزرگی است بحمدلله برای ما که در این ایام و در این مناسبت در پیشگاه سخنان امیرالمؤمنین خازعانه و متوازعانه ایم و از حضرتش تمنای استضاعه و استفاده میکنیم خطبه نورانی قاصعه امام با مهبریت بیان خصوصیات رفتار شیبه ارتباط شیطان با فرزندان آدم به این قسمت از کلام حضرت رسیدیم که بعد از معرفی هایی که به عمل آمد وجود اون که امام خوشدار جدی رو مطرح بر برحضر باشید بندگان خدا از عدو الهی از این دشمن از این دشمنی که در دشمنی خیش بسیار قاطع است با شما و هیچ مسامهی و کوتاهی در این جهت از هر چه دارد نمی کند عدو مبین است کاملا روشن است دشمنی او برانی شما و شما همو را باید دشمن بگیرید و الا بدانید که ضربه کاری را وارد می کند. امام فرمودند که مراقب باشید که او شما را به درد خیش مبتلا می کند گفتیم بدانه یعنی بیماری که او دارد و گرفتاری که او دارد مصری است در صدد آن است که این کبر خودش رو به شما منتقل کند و شما را در صفح متکبران قرار دهد از تمام امکانات هم استفاده می کند تیر عداوت رو در چله کمان گذارده است. زه کمان رو تا آخر کشیده و فاصله هم با شما بسیار کم است ازا میزند و قطعا به هدف می رسد. اگر مراقب نباشید اینها رو خاندیم و گفتیم که امیر فرمود که تهدید جدی رو هم در پیشگاه خداوند متجاسرانه در نهایت پر رویی مطرح کرد نه هم اجمعین تمام سنگم رو می که بند فرزندان آدم همشم روی کنم. البته امام فرمودن این تیر به تاریکی انداختن بود. خود اون هم میدانست که نمیتواند. لذا اللا رو بعد از جمله خودش گفت و مطرح کرد که اللا لباد که من همول و خداوند صبحان هم در جای دیگری فرمودن عبادی لی سلک علیهن سلطان دو بر عباد و بندگان من، شیرگی و سلطه و تسلط نداری لاف مگو تو کار خود میکنی بندگان ما هم کار خود میکنند اما بسیار غمانگیز و اصفنگیز امیر فرمود در انتهای عرض دیروزمون صدقهو تصدیق میکنند گروهی از انسانها مدعای ابلیس را یعنی جوری عمل می‌کنند که سخن ابلیس در پیشگاه خداوند صادق واقع می‌شود متأسفانه اون ادعایی که میگفت لعوقوینهم اجمعین این کار رو می‌کند یعنی این صادق و محقق واقع می‌شود کار مونجا میکشد که صدقه به ابناؤل حمیه چه کسانی فرزندان حمیت اشاره کردیم خدمت دوستان انگامی که میخوام کسی رو دیگه واقعا به یه موضوعی نسبت بدن تصور بفرمایی شما از اصنافی که صدقه قرآنی یا زکات فقیهان به اون تعلق میگیرد از عناوین ابن سبیل است سبیل که زاده ندارد ابن السبیل یعنی چه؟ یعنی کسی که تمام وجود و شخصیت او از همین راه جاده شناخته می شود شناخته دیگری به او نداریم نه به نسب او نه به کس او نه به کار او فقط می مسافر این وادی است از همین راه آمده است به او ابن السبیل گفته می شود امام فرمود صدقه به این ابنا الحمیه تصدیق می کنند. این وعده شوم شیطان رو در حق خودشون گروهی از فرزندان همیت اون تأصبها و قیرتهای نابجا و مضموم و ناپسند و اخوان و لعصبیه. کسانی که گویا با عصبیت و تأصب و فخر فروشیهای ناروا و خودت و پیوند نزدیکی دارند و تصدیق می کنند شیطان رو فرسان کبر و جاهلیت اونها که بر مرکب کبر و مرکب جهل نشستند و میتازند. یعنی عصبیت همیت کبر جهل این چهار آمل را امیر المؤمنین عوامدی که موجب تصدیق مدعای شیطان در حق آدمی می شود خیلی ظریف این جمله حضرت این چهار عامل رو به بیانی اون نفوزی های اصلی شیطان عوامل اصلی نفوذ شیطان و پذیرش حاکمیت شیطان در وجود انسان برمی شمارد همیت، عصبیت، کبر، جهل. تا اینجا خدمت عزیزان مطلب رو گفتیم از همین قسمت ادامه سخن رو در کلام نورانی امام پیگیری میکنیم اتونس انغادت له الجامعه منكم مستحكمت همعيه منه فيكم فنجمت الهاله بن السر الخفي الى الامر الجلي من اشاره کردم محضر مبارک دوستان عبارات و کلمات و جملات و مفاهیمی رو در این خود خطبه میبینیم که لم یسبق الیها احد هیچ کس چنین سخنانی رو در حق شیطان نگفته است و لم یلحقه احد و میتوان گفت هیچ کس هم نخواهد گفت شارح مرتزلی ابن حبل هدید نگاه می‌کردم در میانه همین سخنان حضرت مثل اینکه قلم رو گذارده است و سر به سجده برده است می نویسد که من نمیدانم چگونه خداوند به این مرد این کلمات و سخنان را آموخته است و الهام کرده است که او برای دیگران بازگو می کند و به بشریت آموزش میدهد امیرالمؤمنین شیطان می آید ارتباط را برقرار می کند تصدیق می کنند او را کسانی که مبتلای به این چهار ویجی می میشوند تا جایی که ازن قادت له جامحه تا اینکه که منقاد می شود برای شیطان الجامحه تو منکم کلمه الجامحه از معنای از کلمه ریشه جموع جمحه به معنای چموشی آرامی یه اسبی که قرار نداره یه حالت استراب دارد یه اشتری که قرار ندارد ممکنه کارش رو به زمین بزند به این جامهه میگویند این جمه دارد امیر امیرالمؤمنین فرمود تا آن که منقاد می شود برای شیطان الجامعه صفته قطعاً موصوف میخواد یعنی النفس الجامعه اون نفوس سرپیچه چموش انسان ها یعنی تا جایی که اون نفس که آرام نگرفتند به قرار الهی اون جانهایی که حالت چموشی دارند و حالت این در وجودشون دیده می شود در قبال شیطان منقاد می شود وستحکمت منه فیکم و شیطان محکم می کند و محکم با استدار می شود اون تماع شیطان در چنین افرادی در این انسان دیگه شیطان به طمع خودش می رسه. یعنی اینها رو چه می کند؟ سید می کند. و نجمت حال من از سرل خفیعلله امرل جلی، نجما به معناي زهره به ستارگان آسمان چه میگوید؟ نجم میگوید وقتی این شاخ این بوزه این بض کوچک داره در میاد کم کم از سرش بیرون میگن جمل قنگ. وقتی که این گیاه زمین داره میاد بیرون میگن نجمن نبد، بعد میشه النجم و شجر و شجره، ایست جدان به طلوع سرزدن هر چیزی آشکار شدن و اون نجم میگویند فرمود فنجمت اللحال و منسر الخفی الان عمر الجلی و آشکار میشود حال از اون نهان بودم و آشکاری و حیانی من این جمله رو بگم برمیگردم استفحل سلطان علیکم و بعد شیطان فحل میکند سلطان قدرتش را بر شما استفحله از ماده فحل الفحل و ذراب اون حیوان نرینه قوی که وضعیت اون در گله مشخصه به اون فحل میگن استفحله امام فامد استفحله سلطانه علیکم یعنی اون قوت خودش رو دیگه کاملا تقویت میکند و حاکم میکند بر شما و دلفه به جنوده نهوکم دلفه این لام و فشت زود در علم اشتقاق صرف ما را برمی به زلفه دال و زه لام و فه دلفه و زلفه به معنای قروبه به معنای نزدیک شدن دلفه به معنای نزدیک شدن اما فوق دبیب بالاتر از پاورچین پاورچین آمدن کمی باشه تا به بیشتر پس دلفه به معنای نزدیک شدن این کم کم دیگه داره شدت پیدا میکنه کنه دلفه به جنوده و دلفه به جنودهی نحبه و با تمام تجهیزات و سپام قدرت امکاناتش دیگه کاملا میاد و میاد و نزدیک و نزدیک فاقحمو کم ولجات الظل من برگردن این عبارت رو امید در این چهار پنج جمله این که فرمودن در این, این که مطلب خب بالاخره شیغی اون. ارتباط و نفوظ شیطان رو مطرح می کنند مثل اینکه مراحل رو هم بازگو می و فهمو تا جایی که منقاد می شود برای او نفسهای ناآرام خب ببینید انشانت ها می رسیم از جایی که امام راهکارهای برخورده با شیطان رو مطرح می کنند، اما عزیزان در محیطی که تاریکی وجود دارد ظلمت وجود دارد در محیط مرتوب نمور در محیط مربوط مرتوب نمور می‌بینید که میکروب اینجا میتواند رشد کند اگر این میز آرام باشه میشه این لیوان آب رو گذاردین میکروفون رو گذاشتین کتاب رو اگر نارام باشه ایچی رو این نمیشه گذاشت شیطان در جانهای نارام وارد می‌شود. نه در دل‌های آرامی که علاو به ذکر الله تطمئن القلوب هنگامی که دل یه آرامشی پیدا می کند از چیرگی شیطان و غلب شیطان نسونیت پیدا می کند اما هنگامی که این دل یاد خدا برون تابیده است. تاریکی و ظلمت در این دل اومده دیگه اینجا است که شیطان می‌تواند بر همین دل بیاید و حمله خودش رو آغاز کند ان و جامحه فرمون هنگامی که از انقاطت لحول جامعه تو منکم و از تحکمتت هماییتو منحفی کم وقتی این دل آرام را شیطان میبیند میاد منقادش کند و بعد میاد تهمه خودش رو برای این دل میعف کند یعنی دیگه ارتباطش رو برقرار کند کار با انجام میگشد عجیبه الله اکبر فنجم تل حال و من از سر الخفیه الالعمر الجلی ابتداعا شیطان وقتی که آمد با این دل نهارام برقرار کند آهسته میگفت و وسوسه می کرد و براز با او سخن میگفت و این هم یه تکانهایی می خورد. اما یک باره در مراحل بعدی کم کم به تدریج آشکار می شود ارتباط شیطان با چلین کسی و چنین کسی با شیطان یعنی این کسی که به سر درون با شیطان ارتباط داشت عبای نمی که که آشکارانشان دهد و شیطان رفتارهای خودش رو در زندگی و خلق و ویژگی های این فرد عیان می کند اگر تا دیروز در پستو و نهان خانه چنین مطلبی رو میگفت یا جربی رو مرتکب می دیگه این رو صحنه علمی جامعه نشان می و میگوید کار بونجا می کشد که نهان رو که ریش درون ناقبت سر کند برون می کشد از درون شیطان این خصوصیات و حالات را استفهل سلطانه علیکم بعد دیگه کم کم قوی می کند در وجود این فرد شیطان نفوذ خودش رو و تسلط خودش رو باور این میکنه رفتار این میکنه کند شاکله وجودی چنین کسی می شیطان خواست های خودش رو و دیگه دلفه به جنودی نه و کم مثل اینکه با تمام امکانات میاد به طرف این یعنی تمام وجودش رو تصرف می کند نه توی حوزه زندگیش نه توی رفتار خاصش دیگه با قوت خیمه می شیطان بر زندگی یه چلین انسانی خب به اینجا که رسید فعق مع فعق حموكم ونجات الظل چه میکند با این انسانی که شیطان اینگونه به او نزدیک شده فرق حموكم در همه اقهام باب افتعال باب تفعیل به معنای اندرون بردن به شدت فعق و ولجات الظل اونگاه شما را یعنی اون کسانی که فریب شیطان رو به این شیء بخوردند با, با همکاری با او را باز کردن میبرد به ولجات زل ولجات زل اینها رو میبرد به ولجه مثل مقاه یعنی یه جایی که مثلا کنار کوهی فرورففتگی بیدارد که میخواد مثلا خاتون حفظ کنید از باران به نوی ولجه ولجات ولجات زل میبرد اینها را به پناه اما به چه پناهی؟ به پناه زلت زل به پناه نکبت. پناه آر زبونی ازی من از اتفاقاتی که در نفس انسان در ارتباط با شیطان میافتد ذلت نفس است یعنی شیطان عز نفس انسان رو میگیرد شیطان کرامت نفس انسان رو میگیرد و آدمی رو به لعامت سوق میدهد. این نفس لئیم میشه دیگه هر چیزی رو میپذیرد به هر قیمتی هر ذللتی را تحمل میکند به هر قیمتی برای رسیدن به خواسته نفسانی و مطامع خودش دیگه به تعبیر زیبای امیرالمؤمنین این طمع ها مثل یک برق میتابد و زلینانه وجودش رو میبرد به ورطه ها و حلاکت ها امام فرمود شما را وارد میکند به اون پناهگاه های زلتی که برای شما در نظر گرفت نفس انسان رو زلیل میکنه به کرامت رو میگیره از انسان و اما از روزی که انسان زلت نفس پیدا کند دیگه باها نداشته باشه نفسش کرامتش رو از دست بده و اهلوکم ورتاتلغت و شما رو میبرد ساکنتون میکند اهلوکم شما رو ساکن میکند در ورتها و محلکه های یعنی تا نابودی شما کوتاه نمی آید. تا آنکه شما را به قتل برساند ببردتون به نابودی محض و او تا او کم عجیب عبارات او تا و تا به معنای پابرچیزی گزاردن و فشردن یعنی پایمال کردن و پایمالتون می کند میکند با افخان جراحت فخنه به منای کثوره افخان یعنی فراوانی زیادی با جراحت های بسیاری که بر وجودتون وارد میکنند بر جامتون وارد میکنند جای سالمی در روحتون نمیگذارد به همه اقسام روحتون سرکشی می کند و صدمه ولطمه خودش رو می گذرد. تو خلقتون وارد میشه تو خصوصیات ارتباطیتون وارد میشه شه رابطتون با خدا رابطتون با خل. همه ی حوزه ها رو زیر پوشش قرار میدهد و به هر کجا که می رسد ضربه می زند و صدمه وارد می کند استهزار دارید از اسامی گناه در قرآن گاه اشاره کردیم خدمت دوستان اجترا اونها که اجتراح از ماده جراحت زخمی کردن تیغ رو میزنه فرو میره عفونت میکند عفونت وارد خون میشود از این جراحت به قلب میرسد کار را میسازد شیطان جراحات ها را میزند تا کارتون رو بسازد فرمود از ارخان جراحه حالا تعنن فی عیونکم طعن به معنای زدن با نیزه، نیزه‌ها رو می‌زند به چشم‌هات و تیر شیطان میاد رو چشمتون اثر می‌کنه. خب وقتی چشم انسان به تیر شیطان گرفتار شد، برحق پوشیده می‌شود و به باطل باز میشه این چشم. این چشم نمی‌بیند مگر آنی را که نباید ببیند و می‌بیند آنی را که نباید ببیند و نمی‌بیند آنی, نمی آنی را که باید. ببیند این چشم بسته میشه دوچار چی میشه اعما العما والبصیر این اعما میشه تیر رو میزند شیطان به چشمتون قوت بینایی حق رو از شما میگیرد میبینید و نمیبینید متاسفانه اونها و چیزها میبینید که چون زهر اینه که گاهی در نگاه ناروان و ناجور از منظر شهر. میگن از نظر رو سهممون منص خیلی از نگاه ها که نباد بکنیم به خیلی از منظره ها تیریس از تیرهای های شیطان به تعمیر مصومی، میزند تیر رو به چشمتون. بینش انسان و دی انسان رو بهخر بسیاری از دریافت های ماست تعیب چشم ماست. فرمود میزند تیر رو به چشمتون و طعاً فی اوون و حزن فی حلوقکم حذ به معنای بریدن و این برش خودش رو میزند بر حلقه ها و حلقوم های شما یعنی یارا ی نفس کشیدن رو از شما میگیرد و دقن لمناخره کن دق سنگ رو بزنید بکوبید چیزی رو خردش کنید هاونگ رو بکوبید لح کنید چیزی رو زیر دستاس لح کنید چیزی رو این دق کوبیدن دق قلباب که میگفتن درب را به کوبید مناخ قند من آخر. من آخر منخر بینی بینیتون رو لط میکند و خورد میکند این یعنی چی؟ این استلاح استعاری است عبارت یعنی چی؟ بالاخره گاهین رو میگیم میگیم رقمن لانفه در بزاشته میگفتن گاهی میگفتن خط بینی بکش بینیش رو کوبیدن یعنی دیگه اون حیثیت و شخصیتش رو کاملا گرفتن و سلب کردن. دیگه کاری می کند که به تعبیر امروزین ما هویت شما را از شما میگیره. گیرن. تموم دیگه. وقتی انسان بی شد میشه عروسکی در دست ابلیس و شیطان میکشد کشد هر جا که خاطر خواه هرکجا هر کجا که میخواهد میبرد می برن. من آخر می روید تا آخر کار کاملاً هویت شما را سلب می کند این همون است که خدا در حق او گفته است تبارکن نهر احسن الخالقین کار رو اونجا می کشد قند لمناخره کم تمام هویتش رو از او میگیرد و سلب می کند دقن لمناخره کم و بستن لمن کم دیگه کاملاً به گونه ای آمده است که قصد کرده است مقابله جدی و مقاتله و ویرانی و نابودی و محب کاملتون رو و از سحنه بدر کردن شما را و سوقن حالا و سوقن به خزایم نار ال المعدت لکان و پایان کار چه می کشد؟ چه می شود؟ یعنی یه سوق و سوق می دهد شما را به خزایم القهر خزایم جمع خزامه وقتی شطورهای خیلی قوی بودند و به طور رو کلی مرکبی رو می‌خواستن رام کنن یه چند تا حلقه می توی بینی این عشتور این حلقه ها رو می با این لجام می‌کشیدن حیوان ها رام می شود. به این ها خزامه میگفتن، گفتن لعه که قرآن مطرح میکنه احتناکی که مطرح میکنه اینجا همیر المومنین به این بیان بازگو میکنه میندازه حلقه رو تو بینیتون رشته ای رو به گردنتون میندازه می کشد می کشد کتب من تولاه ف انهو یزله و یهدیه الازاب سعیر میکشد میکشد تا قهر جهنم خاکستر نشینتون شیدتون میکنه ساقن به خزاو امهلو ساقن به خزاو امه القهر علی النور المعدة میبرد تا اون آتشی که آماده است و محیاست برای چنین شیطان زدگانی. عجیب بود این قسمت از فرمایشات امام دیگه تمام این حوزه عملی شیطان با انسان رو به لطیف ترین و زیباترین عبارات از به تصویر کشی. حالا بعد میدانید چه می شود؟ هر جا. شیطان با این روش هایی که گفتیم با این خصوصیاتی که اشاره شد دو حوزه زندگی دو حوزه وجود شما را دیگه کاملا محف می کند و از بین می برد و به تصرف خودش در میاره. خب آیات تو سوره شریفهی بقیره رو می خانی آجیان به هج رفته هنگامی که حجشون به پایان می رسد از سد و نود و بعد خداوند وقتی میخواد از زبان اینها آموزششون بده که اینها چی میگن بعد از هج دستشون رو بلند میکنن میگن ربناتنا دنیا الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه بربادگارا ما حال که آمدیم و وجودمون رو شستیم و رفتیم از هر آنچه که ناشایستست و پیوستیم به حضرت تو انگامی که این طوفمون، سعیمون، متافمون، همه چیمون رو آنگونه که گفتی انجام دادیم بر بردگاه را از تو می خواهیم که یه حیات تنگیبی، یه زندگی شایسته‌ای در دنیا و یه حیات پاکیزه‌ای در آخرت بهره و نصیب ما گردانی این است که خداون زبان این مؤمنین در قرآن می و آموزششون می دهد. ما دو تا حیات داریم عزیزا، الحیات الدنیا و الحیات الاخره حیات زندگی دنیای ما مشخص بعد مادی اون معلوم اما اون حیات اخروی ما از کجا تأمین میشه؟ از آن که زندگی و حیات دنیوی ما منطبق بر حیات دینی ما باشه اگر زندگی دنیای ما خارج از دین ما شد تمام تفکیکش کردیم دین و دنیا رو اما اگر حیات دنیاوی ما منطبق شد بر چهارچوب حیات دینی ما اونگاه میشه ربناتناف دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه شیطان میاد این دو رو از ما میگیره. حیات دنیا و حیات آخرت رو چگونه؟ با اینکه حیات دینی را از ما میگیرد حیات دنیاوی ما را هم قطعا میگیرد چقدر زیبا امام این جمله رو چنین اشاره میفرماید و لطیف بازبوم میکنه وجود امارکشون فرمودند فَأَسْبَهَ عَعْزَمَ فِي <تصفيق> دِینَكُمْ بعد شیطان میشه بزرگترین و عظیمترین آفت در دینتان یعنی چی رو هدف قرار میده شیطان اول؟ دین شما هدف اول دینتونه. هر کجای دین رو بتواند شیطان صدمه بزنه میبره به اونجاهایی که گفتیم یعنی اولین هدف عزیزان بزرگواران برادران و خواهران گرانقدر. اولین چیزی رو که شیطان تمعه بر اون می کند تیر خودش رو با همون کمانی که مشاهده فرمودید به ذهب کشیده در چله کمان گذارده است اون تیر رو رها می کند اولین چیزی رو که هدف قرار میده دین ماست دی ارتباط ما با حضرت باری تعالی رو زیر سآل میبرد و تمام مقولات دینی ما را عبادی و اجتماعی دینی ما را تمام معارف دین و توصیه های دین رو اعتقادات را اخلاق دینی را احکام دینی را <تصفح> مسلم بدونید از عقید، عقیده آغاز میکند چیتان یعنی از تشکیک در اقاعدمون از تشکیک در باورهای انسان ها آغاز میکند به اخلاقشون میکشد به احکامشان میکشد و بزرگترین رنج را و بزرگترین مشقت را و بزرگترین حرج را به تعبیر امیر المؤمنین شیطان بردین دارد میکنند فرمود فاسبه اعظم فی دینکم حرجا و او فی دنیا کم قده ها خب است الان اشاره کردم حدمت عزیزه این نگاه ماست هنگامی که شیطان دین ما را هدف قرار داد اون کسی که آخرت حسنه نداشته باشد به اعتقاد ما دنیای درست هم نداره تصور بکند که دنیاش براش لذیذ شیرینه نمیشه چنین چیزی نیست اون کسی که شیطان دین رو, اون رو هدف قرار می دهد دنیای اون رو هم هدف قرار می دهد. اما تعبیر حضرت اینه فرموت و او فی دنیا کم ها بیشترین آتش افروزی را هم در دنیای شما می کند هم تباه میکنه کند به جای اون که شما از ارتباطات انسانی لذت ببرید همیشه در فکر اینید با این کس چگون؟ با اون کس چگونه؟ کلاه کسی رو چگونه بردارن؟ گوش فلانی رو چگونه ببرن؟ برای ناموس فلان کس چه کاری بکنن؟ برای زندگی و موبیت فلان کس چه فکری بکنن؟ این دل پر چینه مردمان رفتار همیشه به شر و نیت با انسانها تباه می کند، نارام می کند. زندگی دنیا شما را با تمام این ها و این وساوست و تمام اون چه ایجاد می کند. فرمود دینتون رو دچارش مشاقاتی میکنات و عافت بزرگ دین میشود و عافت بزرگ دنیای شما میشه. فس به آزمایش دین کم هر و آوران فی دنیا کم قدها. من از این اسبحتم لهو مسا مناوس، بین و علیهم متأهل بین. بدونید با هر کی تو دنیا درگیرید، با هر کی رو برومیشید، با هر م... کسی که مشکلی دارید، این چیزی نیست. مشکل اصلی با شیطان هست از تمام اون کسانی که اصبحتم لهم مناسبین با اون نعصب باساد یعنی مشکلی دارید اداوتی دارید مشکلی دارید اون شیطانه که اصبحتم اون ادابه اصلیه این ها مشکلات ورین و علیه متعلبین و کمام اونهای که بر شما حجم کردن چیزی نیست اون حجم اصلی از سوی شیطانه اونه که بزرگترین آفت دین و بزرگترین آفت دنیای شما خواهد شد حالا من عدی توصیه می به شما دیگه امام دارن وارد مقدمات و بیان راهکارهای مواجهه و مقابله با شیطان می شوند. حضرت فرمود فجعلو علیه حدکم پس بیاید قرار بدید علیه بر شیطان حد خودتون رو فجعه دو علیه حد دکن حدتون رو بر شیطان قرار بدید خود واژه حد به معنای تیزی است اون تیزی رو میگن حد فجعه دو علیه حد دکن تمام تیزیتون رو یعنی تمام تمامتون رو تمام نیروی که دارید در این جهت صرف کنید آماده و مهیا کنید در قبال شیطان فجعلو علیه حدکم ولهو جدکم ولهو جدکم هر دور نوشتن به نسای نهجون بلاقه و برای شیطان قرار بدید جد خودتون رو مراد اگر جد باشد به معنای اون عظمتون رو اراده قوی خودتون رو اگر جد هم باشد به معنای قاطعیت از فرقی نمی با تمام قاطعیت با تمام نیرو اولین جمله‌ای که امام اشاره می‌کنند عزیزان این است که شیطان با تمام ظفیت مقابل شما ایستاده است قیل از این است الا عقدن لهم صراطا مستقیم من دقیقاً می‌شینم تو سرات مستقیم یعنی کاملاً می‌نشینم سرات مستقیم رو برای حال سعی می‌کنم ببندم سنبل آتینه هم من بین هیدی هم و من خلف هم و هم و ان هم چهار جهت رو بر اینها میبندم یعنی شیطان از هیچ جهتی نیست الا این که حمله شو بر ما آغاز کرده است حالا در جای خودش در تفسیر اشاره کردیم در محضر قرآن که مراد از این چهار جهت اینی که از پشت سر میاید تشکیق در ارتباط در مبدع و ارتباط انسان با خداوند می کند میاد توحید رو هدف قرار میده پیش رو را معاد را اونچه به سوی اون داریم میریم جهان آینده رو تشکیه که در اون میکند و دنیای آینده این ما رو هدف قرار میدهد از پس سر از پیش رو از راست و از چپ میآید از چپ می آید میدانیم زشتی ها شومی هاست از راست میاد از طریق خیر رو از طریق صلاح و یا علیه انسانو ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِيم و از این جور دیگری و راه دیگری میآید از طریق خیر هم میاد چه کسانی به بهانه خیر در طول تاریخ فریق شیطان خوردن تمام این فرقانی که ساخته شدند مگر خوارج کی بودند شیطان زدگانی بودند که های پینه بسته از تهجدشون کسانی که به ناله سحری شبشون رو میگذراندند اما تشنه به خون علی ابن عبی طالب ولی جلاد، از راست هم می آید از این سو هم می آید از آن سو هم می آید از چهار بود یعنی تمام این عباد متصور میاد تو صحنه. امیر المؤمنین فرم می عزیزان وقتی که یه دشمن با تمام نیرو اومده وقتی میتونید باش مقابل کنید که شما هم با تمام امکانات و با تمام قدرت ممکن مقابل او ایستاده باشید و الا نمی توانید حریف این میدان بشید پس دشمن را نمی توانید دست کم بگیریدید نیروهای خودتون رو هم توان خودتون رو هم نمی توانید همه اون رو به کار نبرید با تمام حد و تمام جد خودتون رو به کار ببرید قوی و محکم و ععدو لهم مستطقتون من قوه با تمام این نیروتون رو مهنیا کنید مقابل شیطان با تمام ظرفیت با مقابل این با شیطان بکنید مراقبت جدی می خواهد بیداری می خواهد خوشدار، خشدار تا کله چرخ داده این به تمام وجود باید بیدار باشید و از تمام ظرفیت ممکنتون در مقابل باشکان استفاده کنید این اولین نکته پس این نکته مهم نیست که اما می فرماید بالاخره می دونید عزیزان خیلی اوقات دمجاهات جسمی بگید بالاخره. وقتی انسان جدی نمیگیرد میاد طوری نمیشه حالا ما اینی بخوریم مگر چی نیشه نمیدونم این کار بکنیم مگر چی نیشه یعنی ساده انگاری در بسیاری از مسائل موجب میشود که آدمی مسلم مبتلا و به گرفتاش دست کم گرفتن به تحویر ورزشکارها وقتی این حریف تو دست کم گرفته وقتی این چیزی نیستی رو که ما با سی ثانی نیش میکنیم تا میره تو توت دوشک هنوز چیزی نشده از ببیند وسط آسمان به زمین درخ کوب یه مرتبه کوبیده شد وسط میدان تمام یه مرتبه ناکتان شد با یه ضربه کارش بپاگر رسید تا به خود اومدید تموم شده شیطان را دست کم نگیرید یک از تمام ظرفیت خودتون استفاده کنید تمام ظرفیت زمانی تمام ظرفیت درونی از تمام اونچه خدا به شما داده است. خیلی این جمله جمله مهم نیست عزیزا یعنی من میخوام بگم این جمعه حضرت رو اگر نگیریم بقیش رو نمیگیریم قطعا قدم اول همینه اگه قدم اول رو درست بر نداریم دوم رو بر نمیداریم که شیطان رو با همون ای که امام توصیف میکند بشناسیمش و ظرفیت های خودمون رو بدانیم و به تمام ظرفیت مقابله او آماده باشیم در تمام زمان و مکان همه اشارات فرمود پس برابر این شما فجعلو عليه علی حدکم و له حدکم الله لوحه لقد فخر على اصلکم و وقع في حسبکم آقا بدونید شما رو به خدا قسم این بحث بحث بنیادی است امیرالمومنین میفهمد شیطان با شما مشکل جدی دارد اینو عرفی عرض می کنم گاهی خدا رحمت کند خیلی از قدیمی ها مثلا که می رفتن آقا می ما با تو پدر عاشناییم ازیز من ما در نسل با شما نزدیک بودیم قریب بودیم دوست بودیم این عرض هوا است، این محبت ما با شما این محبت من نیست ما اصلا در وجودمون این محبت وجود دارد امیر نقطه مقابلش رو گه میگه این شیطان عداوتش با شما تبارسیه این اصل وجود شما را اصلا سال داره اصل وجود شما را اصلا نمیپذیرد این چگونگی وضعیت شما را بحثی نداره این شیطان در آمدن به صحنه شما بحث داشته است در مطرح شدن شما بحث داشته احازن لذی کردم تعالیه الله اکبر الله اکبر گفت همینه همینی که میگم من ب... سجده کنم بهش همینه به همین آدم سجده کنم با همین موجود سجده کنم؟ اینو به من کرامت دادی؟ با همین جسمش، با همین خاکش، با همین وضعیتش؟ اصلاً اصل وجود شما رو انکار داره شیطان خب وقتی یک کسی اصالت وجود ما رو اصلاً نمیپذیدد و زیر سآل میبرد ما با این با چگونه رفتار کنیم؟ با بدونیم این رو که با کی طرفیم و چه نگاهی به ما داره و چه وضعیتی به ما دارد؟ عجیب این جمعه حضرت فلا امر الله یعنی فلا امری به الله باز دوباره امیر المومنین چی میگرد؟ قسم یاد میکنه اون هم به جان شریفش نداریم خطبی تو نهجر برای که امام دو سه بار به جان خودش قسم یاد کنه بدونید وله عجل الله وله شعن الله قسم به نفس خودم عرض به خدمتون به خدا ها لقد فخر هلا اصل کم. این ابلیس اصلا به اصل و بنیاد اولیه شما فخر داشته به شما رو هیچ عددی نمیدانسته است و وقع فی حسب کم وقع به معنای تحقیر توهین، وقیع به معنای چیزی رو کاملا پستوزشت کردن و وقع فی حسب کم اصلا حسب شما و نسبت شما رو که فرزند آدمید این رو به هیچ گرفته است و زشت و ناپسند میداند و تحقیرتون کرده است و شما رو ابلیس عددی نمیپندارد اصل وجودتون رو نمیپسندد و رسحان برده است و دفع افین نسبکم اصلا دفع کرده حسب شما رو اصلا رو هیچ ازم دم ورودی ردش کرده است شیطان میاد وارد خونه میشه دشمن میاد وارد خونه میشه نیروهاتون آماده میکنید جوانان وطن حمله میکنن از خاک و بلاد و بوم دشمن رو بیرون میکنن میشه رفع ادو اما اگر از دم مرزها دشمن رو اجازه ورود ندادید راندید میشه دفع ادو اگر گناه کردیم بعد تدارکش کردیم از فر الله ربی و و میشه رفع الظعنب اما اگر اساسا جوری عمل کردیم که مبتلای به گناه نشدیم میشه دفع الظعنب میگه و دفع فی نسبب اصلا اجازه نداده شما به صحنه بیاید در ذهن و خیانش این شیطان اصلا نسبت و انتصاب شما را از بیخوبون رد کرده است و شما را به کناری زده است این ابلیس. امام خوب عبارات رو جوری میگن که دیگه اون واقعا در انسان بجوشد اون حس انسانی انسان به اصالت خودش به وجود خودش بیاد به خود بیاد تکان بخوره و مقابل شیطان بیستد و از ظرفیت خودش استفاده کنه و اجلبه به خیلهی و قصده به لهی سبیلکم به بیان دیگه اینها را ازد فرمودن جوری دیگه می و اجلبه گفتیم اجلاب اجلبه یجلبه اجلاب به معنای حمله کردن و راندن و حمله می کند با خیل سبار نظام و قصده به رجله سبیلکم و قصد می کند با پیاده نظام مسیر شما را یعنی این شیطانی که شما را هیچی نمی از همه چیز خودش در قبال شما استفاده می‌کنه. اگر شما شیطان را با این چیز بشناسید می باش بهش مقابله کنید اگر شما هم با همه چیزتان به صحنه بیایید می مقابله کنید اما اگر اون با تمام امکانات بیاد شما بدون ساز و برگ لازم بیایید نتیجه این نبرد و رویارویی مشخص است یقتنسونکم به کل مکان یقتنسونکم اقتناس به بنای سید کردن هست بناسه اونو که با اون شکار رو میزنن به سیدش میکنن یقتنسونکم به کل مکان هیچ کجا امنیت از شیطان ندارید میخواد کلام و خدا رو باز کنید میخواید مصحف شریف رو باز کنید بخونید به شما میگن فعه قرع تل بالله من الشیطان الرجیم قران میخاید بخونید میگن وقتی قران رو باز میکنید پناه ببرید به خدا از شیطان رجیم یعنی ممکنه در خواندن و مراجعه به قرآن هم به سراغ شما بیاید ممکنه نگاه کنید با آیات شریف قرآن میخونید و دچار برداشت های غیر الهی و انحرافی باشید بدون یمنهام اسمنهین جمرات و کفن خزیب زینت به بنانی فوال نوه ادی و ان کن تداریو به سبع رم جمراتم به سمانی حرفه در منا روز دهم اهرام بسته اعمال انجام داده داره شیطان رو رم می شاعر میگه وقتی این دست بلند شد شیطان رو بزنه اونقدر ترکیب این دست و انگشتان این زن زیبا بود که با خدا قسم من نفهمیدم 6 تا زد یا هفت تا زد فوالله ما ادری و ان کنت اداری به سبع جمرتان به سمان یعنی در حساس ترین صحنه ای که شما دارید شیطان رو رمی میکنید اما اونجا هم شیطان شما را رمی میکند کنار کعبه هم امنیت بهتون نمیده کجا دیگه میخوایید بگید از این زیزده نمیدانم بیست هفزرا جای امنتری رو میخوایید بگید که فمن دخل حکان آمنها یختن سو نکن یختن سو نکن هر کجا که بتونه شکارتون میکنه و سعیدتون میکنه فرقی نمیکن یختنسونکم به کل مکان و یزربون منکم کل بنان و یزربون ببینید این یه ترکیب کنایی و استلاحیست میزند به کل بنان یزربون کل بنانکم یعنی میزند تمام بنان سر انگوشتان یعنی قط می کنه دست شما رو از هر چی که بتونه یعنی از هر خیری سعی میکنه دست شما رو کوتاه کند شما رو محروم کند از هر خیلی که بدواند پس در هر مکانی امکان آن دارد که به سید شما بنشید از هر خیلی تلاش می کند که شما رو کوتاه کند یزربون من کل بلانن لا تمتنعونه به خیلتن و لا به عظیمتن کاری می کند؟ اگر اون مراحلی که گفتیم طی شد کاری می کند که لا تمتنه اونا به نبه حیلتن دیگه نتونید مقابلش با هیچ حیله ای منحش کنید و جلودارش باشید البته اینجاییست که انسان دیگه ولایتش رو پذیرفته دیگه حلقه به بینی افتاده و کشیده داره میبره دیگه اونجا وقتی اسیرش شدی دیگه حیله هم فایده ندارد حیله یعنی چه؟ چاره حیال یعنی چارگه هم در فقه داریم که فقیه احتياط میکنه لا یزال الفقیه یحتال یعنی ما ممکنه شما یه نماز رو میخونید یه جاییش پیچ تاب میاد ممکنه قطع کنید این نماز رو یه نماز رو میخونید به پایان نمینیسید میگید نشد این نماز من باید اعاده کنم این درست نشد فقیه وقت این کارو نمیکنه یعنی برای هر نقص و خللی که در نماز بیاید چاره دارد همون نماز رو درست میکنه لا یزالت فبیح یحتال یعنی چاره بلده حیله پس یعنی چاره؟ فرمود لات همت بهیلاتن. دیگه نمیتونید اگر رفتید تو دامش افتادید اینطور هیله کنید برای چاره کنید. ولات هدفعونه باعزمتنه. دیگه اونجا نمیتوانید با هیچ ازیمی، با هیچ قصد و عزمی دفنش کنید و از خودتون دورش کنید. دیگه میافتید فی حومت هومه یعنی میدان محرکه دیگه میفتی توی محرکه زلت پستی حقارت واقعا این حقایاتی که در زندگی انسان میبینیم عزیزان انعکاس رفتار شیطان و پذیرش آدمیان عمل کرده شیطان را و وساوس شیطان رو را و راهکارهای شیطانی رو را خیلی انگیزه برای چه چیزی ببینید با سرنوشت یه امت و یه ملت بازی میشه چگونه عبید الله ابن عباس نیمه شب قبل از نماز صبح وجود اون باره که حسناب نحلی یه به معاویه با دوازده هزار درهم چه معامله هایی چه حساب کتاب هایی را می بینید در طول تاریخ تاریخ معاصرمون گذشته دیرینه تاریخ اسلام به چه قیمت‌های فروختنگاه شرافت را ناموس را دین خدا را وطن را با چه ذلت و زبونی و خاری به چی فروختند به چی فروخت پناه به خدا به سمن رخیز، و شراع به سمن بخش، در روح معدوده. یوسف رو به چه فروختند؟ به چه سمن بخصی فروختند؟ این زبونی به حقارت نفس انسان است و این نفس اگر بهای خودش رو پیدا کند ازیزان از لیزن سمن سمنون الا الجنه فنا طبیعوها و الا بها باهای ارزش وجودی انسان میشه فقط خدا و خدا که مشتری من خدا می الله هشترا. انا الله هشترا من و یا دمر ها می کشد باله چندنا و هشته انندا وهش دراممل الممنی هم و با. به غیر خدا معامله کردن و فروختن زبونی هقارت و حقارت و ذلت نفس انسان است اما میبراتون تو میدان زلت تو آموم زلت. فی حومت زلن و حلقت زیغن بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندش نرهانم آن با آن حلقه رو چه میکنه؟ زیغتر میکنه و محاصره رو تنگتر میکنه و عرصت موتن دیگه این رو تبیل میکنه به عرصه مرگتون دیگه تا نابودی و فناتون میرفت و جولت بلائن دیگه هر بلایی که بخواهد بر سر شما وارد میکند و این رو میدان تاختاز و جوله ابتلاهات خودش میکنه شیطان شما و شما را به هر دردی که دارد و به هر بلایی که دارد شما را مبتلا میکنند خب امام دیگه به تعبیر من به اوج رسان وجود و تمام این امکانات و شیبه ها و ضعف ها و قوت ها و آسیب های ارتباطی ما با شیطان رو تو این قسمتی که امروز ارز کردیم و تمام احتمالات پیش بینی شده رو وجود و بارک بازگو فرموند. حالا اینجا ما رو می کنیم به ساحت مقدس و شریفشون می بالاخره بلاخره راز بکشا یا علی مرتضای پس سوال غذا حسن الغذای علی که جمله عقل دیده ای شمه ای از آن چه دیده ای؟ آقا کم ای معلم بزرگ بشری، ای حکیم بزرگ الهی، خب بگید پس برابت این راهکار بدید به ما که ما بتوانیم در آن آنچه فرمودید، ما همون جد و جدمون رو حد و جدمون رو به کار ببندیم با تمام ظرافتون بیاییم اما با هدایت و راهنمایی جناب که متخصه از فرامین ذات باری تعالی و حضرت ربانی است. امیرالمؤمنین دیگه از اینجا وارد این بحث میشه فاء فؤ ماج همه نفی قلوبکم من نيران العصبيه راه مقابله شیطان از کجا شروع میشه از درونتون شروع میشه از درونتون شروع میشه بعد برید ان درون خودتون و اتفاق کنید نیران العصبيه حالا اینها چیه چگونه است ان شاء الله دیگه فرمایید که اینها رو به تفصیل این بخش از خطبه نورانی حضرت رو انشاءالله در گفتگوی بعد محضر و مبارکتون پیگیری کنیم پر و آه به روی امیر المؤمنین و به زلال سخنام حضرتش جانهای ما را و دلهای ما رو از وساوس شیطان مسئول و محفوظ بدان